اتزار افزان برنامه از گروه جوان و فرهنگ نام خالق افسانه و حقیقت آن خدای مهربان و مهرافرین سلام افسانه ها بخش مهمی از میراث فرهنگی هر قومی به شمار میرن در افسانهها ها ارزش های سنتی و پس های فرهنگی و روانشناختی هر قوم و رویدادهای اجتماعی جاری انعکاس پیدا میکنه. کنه رو از مردمان سرزمین ایرلند براتون نرم می به نام کنال، دونال و تایگ برگرفته از کتاب افسانههای مردم ایرلند نوشته فیلیپ اسمیت با ترجمه ای از حسنا شنبیاتی روزی روزگاری در سرزمین ایرلند سه برادر به نامهای دونال و تایگ زندگی میکردند اونها همیشه بر سر قطعه زمینی که از پدرشون به اونها به عرث رسیده بود با هم اختلاف داشتند و هر کدوم ادعا میکردند که زمین باید مال اون باشه بالاخره یه روزی اختلافشون بالا گرفت برای تعیین صاحب زمین به دیدن تمام افراد عادل شهر حتی قاضیای کشور رفتن اما از اونجایی که این سه برادر از هر نظر به هم شباهت داشتن هیچ قاضی تا اون موقع نتونسته بود به نفع یکی از اونها رأی بده و یکی رو به عنوان صاحب زمین انتخاب کنه سه برادر که از این وضع خسته شده بودن تصمیم گرفتن پیش عادلترین و معروف ترین قاضی کشور برن قاضی که پشت میز بزرگی نشسته بود با دقت به حرفهای سه برادر یعنی کنال، دونال و تایگ گوش داد و بعد با صدای بمی گفت من حرفهای شما رو شنیدم به من فرصت به در این مورد فکر کنم و نظر درست خودم را اعلام کنم بعد قاضی از تا برادر خواست که روز بعد برای تعیین صاحب زمین نظر اون برم یه روز گذشت و سه برادر همونطور که قاضی از اونها خواسته بود دوباره پیشش رفتن و قاضی با دیدن اونها گفت من تمام شب رو فیک کردم و بعد از بررسی های زیاد به این نتیجه رسیدم که هر سه نفر شما از حق مساوی برای تصاحب زمین برخوردارید و هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارید و به همین دلیل انتخاب یکی از شما عنوان صاحب زمین کار خیلی دشواریه. بعد قاضی مکسی کرد و ادامه داد و نگران نباشید من به زودی تصمیم خودم رو میگیرم و زمین رو به یکی از شما میدم به نظرم شما ستا جوون خوشخیافه اما تمبرید بنابراین من زمین رو به کسی که تمبلتر از بقیه است میدم کنال با خوشحالی گفت <تصفيق> پس زمین جناب غازی باید مال من باشه چون از دو تا برادرم تمبلترم در واقع من تمبلترین مرد روی زمینم غازی گفت چرا فکر می‌کنی تمبلترین مرد روی زمینی ها؟ کنال با هیجان جواب داد قربان چون من اون قد تمبرم که اگه وسط جاده خوابیده باشم و همون موقع هنگی از سربازان سوار نظام سوار بر اسب یرتم میکنن به طرفم بیان ترجیح میدم زیر پای عصب له بشم تا زحمت برند شدن و فرار کردن رو به خودم بدم قاضی لبخندی زد و گفت آه که اینطور پس تو واقعا مرد هستی <تصفيق> فکر نمیکنم دو برادر دیگت از تو تنبلتر باشن پس زمین در این موقع دونال میونه حرف غازی پرید و گفت نه نه نه نه نه این درست نیست جناب غازی من از کنال تمبلترم غازی خندید و گفت که تو از برادر تمبلتری ها؟ خب تنبلی تو تا چه اندازه است؟ دونال با حیجان جواب داد من, من من تنبلم بلم که اگه کنار آتیش بزرگی نشسته باشم که چوب تمام درخت های جنگل و تمام ذخیره هیزم شهر رو توش ریخته باشن ترجیح میدم همونجا بشینم تا آتیش استخونام رو به خاکستر تبدیل کنه و زحمت بلند شدن و فرار کردن رو به خودم ندم بله قاضی زد گفت <تصفح> عجب پس تو از کنال تنبلتری در این موقع تایگ به قاضی نزدیک شد و گفت جناب قاضی جناب قاضی من از کنال و دونال تنبلترم قاضی از تایگ پرسید خب، بگو ببینم تو چطور از دوتا برادری دیگر تنبلتری تایک به تندی گفت چرا خاصی من اینقدر اینقدر تنبلم که اگر روی زمین به پشت درست کشیده باشم قطرهای دوده به درشتی تگر از سقه شیربونی توی چشمامم بیفتن ترجیح میدم تمام عمرم رو همونجا دراز بکشم و اجازه بدم قطرهای دوده توی چشمام بیفته تا زحمت بستن چشمام رو به خودم ندار تایک بعد تاکیدکنن کنن ادامه داد میبینی جنابه خاصی من چقدر تنبلم؟ واقعا باور نکردنیه شما سه برادر تنبلترین مردانی هستید که من تا به امروز دیده و در موردشون حرفی شنیدم من نمیتونم بگم کدوم یک از شما تمبلتر است دوتایی دیگه هستید اجازه بهت این کادری در این مورد فکر کنم و راه خلی پیدا کنم ساعت بعد قاضی به ست برادر گفت من زمین رو به کسی میدم که سنش بیشتر باشه. کنال گفت خب با این حساب من باید صاحب زمین بشم چون وقتی بیست یک ساله بودم یک کشتی پر از درفش داشتم و هیچ وقت حتی یکی از اونها رو گم نکردم یا نشکستم و دیروز از آخرین درفش برای تعمیر کفشم استفاده کردم قاضی گفت بسیار خوب بهنظرم تو بزرگتر از برادرت هستی دونال به تندی گفت نه جناب قاضی این درست نیست من از کنال بزرگترم قاضی گفت مگه تو چند سال داری دونال گفت من وقتی بیست و ساله بودم یک کشتی پر از سوزن داشتم در روز آخرین سوزن و برای دوخن لباسم استفاده کردم قاضی گفت پس تو از کنال بزرگتری و اون دیگه شانسی برای تصاحب زمین نداره تایگ با ناراحتی گفت ولی جناب قاسی این درست نیست این بیعدالتیه قاضی گفت چرا؟ مگه تو چند سال داری؟ تایگ گفت وقتی بیسی یک ساله بودم یک کشتی پر از تیغ داشتم و دیروز برای تراشیدن ریشم از آخرین تیغ استفاده کردم قاضی گفت خیلی عجیبه من تا به حال چنین داستانهایی نشنیده بودم من نمیتونم بگم کدوم یک از شما سه نفر بزرگترین تصمیم داری مورد خیلی سخته اجازه بدین فکر کنم و چاری میاندیشم غازی چند ساعت بعد به ستا برادر گفت من فکر میکنم زمین رو به کسی که حافظه قوی تری داره باید بدم کنال با خوشحالی گفت آ این خیلی عالیه چون حافظه من جناب غازی قوی از حافظه دوتا برادرمه غازی پرسید چطور؟ کنال گفت حافظه من اونقدر خوبه که حتی وقتی رو که یه انسان اولین بار گربه ای رو زیر پاشله کرد بیاد میارم جناب غازی غازی گفت خب خب این اتفاق باید مربوط به سالهای خیلی دور باشه پس زمین به کنال تعلق پیدا میکنه در این لحظه دونال گفت جناب غازی عجله نکنین من حافظه قوی تری دارم من حتی موقعی که هیچ کس کلمات بدی خطاب به دوستش به کار نمی برد رو هم به یاد دارم بازی سری و گفت درست مسلما مسلمان تو حافظه خیلی خوبی داری بعد رو کرد به تایگ و گفت تایگ فکر نمیکنم کنم حافظه تو به خوبی حافظه کنال و دونال باشه ها؟ تایگ گفت اما چنا قاسی این حقیقت نداره چون حتی زمانی که از هر ده مرد نه نفرشون دروگون نبودند رو هم بیاد دارم آزی گفت وای وای <تصفيق> تایگ تو حافظگی شگفتنگیزی داری؟ من هیچ وقت کسی رو ندیدم که حافظه ای به خوبی حافظه شما تا برادر داشته باشه و همین کار منو سخت در میکنه من بازم باید فکر کنم تا به نتیجه نهایی برسن بازی همچنان در اندیشه بود تا شاید بتونه زمین رو به کسی که واقعا حقشه بده بنابراین گفت من زمین رو به هر کدوم از شما که چشمایی قویتری داشته باشه و بتونه فاصله دورتری رو ببینه میدم بله فکر کنم این بهترین راهه. کنال گفت شک نکنید جناب غزی که زمین مال منه چون چشمهای من اونقدر قویه که میتونم پرندهی رو که روی قله کوهی در فاصله 16 کیلومتری نشسته ببینم و حتی پلزدنهای اونو از همین فاصله دور بشمرم بله من تا این اندازه تیزبین و قویم غازی گفت کنال تو چشمهای خیلی تیزبینی داری و فکر میکنم باید زمین رو به تو بدم بله حق توی که صاحب اون زمین بشی دونال با عصبانیت گفت جناب نا لطفا اینقدر زود قضاوت نکنید چون چشم های من اینقدر قویه که نه فقط میتونم پرنده رو از فاصله ده کیلومتری روی نک کوه ببینم و پلک زدنهاش رو بشمرم بلکه حتی میتونم خار کوچیکی رو که به چشم پرنده فرو رفته و باعث پلک زدن اون شده از همین فاصله دور ببینم قاضی گفت وای وای چشمای تو واقعا قوی دونال تایگه بیچاره دلم برای تو میسوزه چون دیگه شانسی برای تصاحب زمین نداری تایگ توسخندی زده گفت آقای قاضی چه فکر کردی؟ چشمای من حتی از چشمای کنال و دونال قوی تره. چون میتونم؟ با شمردن زربان قلب پرنده از همون فاصله بگم که پرنده سالم یا بیمار آزی که دیگه حسابی خسته شده بود با نورتی گفت من واقعا گیت شدم اجازه بدین کمی فکر کنم شاید به نتیجه قابل قبولی برسم غازی سخت به فکر فرو رفته بود سه تا برادر گفتن جناب غازی، بالاخره زمین متعلق به کدوم یک از ماست قاضی گفت شما عجیبترین انسان هایی هستید که تا به حال دیدم بنابراین تصمیم گرفتم زمین رو به چابکترین و فرسترین فرد بدم کنال گفت من خیلی خوشحالم <تصفيق> چون من چابکتر و فرسر از دو تا برادرای دیگه هستم من اونقدر چابک و فرزم که اگه من با یه پای بسته به قطع زمینی پر از خرگوش ببرین و گرگی رو هم در میون خرگوش هاراها کنید نمیذارم حتی یه خرگوش فرار کنه قاضی گفت کنال انگار تو از برادرات چابکتری پس زمین مال تو دونال با عصبانیت گفت جناب قاضی این چه عدالتیه که شما دارین؟ من میتونم سریع ترین مسابقه دنیا رو در حال یتمه با بیشترین سرعت در میون و آسمان و زمین نل کنم و هر بار که اون پاشو از روی زمین بر میداره یه میخ به نعلش بکوبم قاضی گفت آه. حالا ببینیم تایی چه حرفی برای اثبات چاوکی خودش داره بگو تایی بگو تایگ گفت جناب خواستیم اون قلعه رو که اونجا روی اون تپاس میبینین همونی که نه در داره نه پنجره و نه صف و باد داخلش جریان داره اونو میبینین قاضی به دور دست ها چشم و گفت بله بله بله البته که میبینم تایگ بعد تایگ گفت خب من اونقدر چابکم که اگه در طوفانی ترین روز سال غلعه رو پر از پر کنن نمیذارم حتی یه پر گم بشه قاضی گفت آه باور کنین تصمیم گرفتن در این مورد کار خیلی دشواره. شما سه نفر عجیب ترین انسان هایی هستید که تا حال من دیدم فقط یه راه وجود داره هر سه برادر یک صدا گفتن چرا هی جناب غازی؟ سری سریده گم داده گفت سبر داشته باشین صبر به نخر زمین به کسی که حقش باشه میرسه خاضی نشست و نشست و نشست و فکری کرد و بعد گفت فقط یه راه مونده یک راه اونم اینه که زمین رو به باهوشترین فرد بدم اما اگه این بار هم نتونستم تصمیم نهایی رو بگیرم دیگه کاری نمیتونم بکنم و شما خودتون یه جوری باید با هم کنار بیاین کنال گفت پس معلوم شد زمین مال منه چون من از دو تا برادر دیگم خیلی باهوشترم. دارم قاضی گفت چرا باید زمین رو به تو بدم کنال؟ چرا فکر میکنی خیلی باهوشی؟ کنال گفت برای این که میتونم فقط با دونسن رنگ چشم فردی و بدون داشتن هیچیک از اندازه هاش براش لباس بدوزم قاضی فورا گفت خوب خوب رو چه؟ بالاخره مسئله حل شد زمین متعلق به کناله دونال اعتراض کنن گفت این چه قضاوتیه جناب غازی چرا باید زمین به کنال برسه در حالی که من از اون باهوشترم قاضی گفت چطور تو از کنال باهوشتری بگو ببینم دونال گفت من میتونم فقط با شنیدن صدای صرفه فردی و بدون داشتن اندازهاش براش لباس بدوزم قاضی گفت خو شما دو نفر باهوشترین آدم هستی هستید که من تا به حال دیدم تایگ بیچاره. تو دیگه شانسی برای شکست برادرت نداری من خیلی برای تو متاسفم تایگ تایگ لبخندی زده گفت <تصفيق> اما من اینطور فکر نمی جناب قاضی قاضی با تحجب پرسید چطور؟ یعنی تو از دو تا برادرت باهوشتری؟ تایگ گفت بله چون اگه من قاضی بودم و اونقدر نادون بودم که نمیتونستم مسئله رو حل کنم لاقل اونقدر باهوش بودم که بعد از بررسی دقیق همه چیز بالاخره تصمیمم رو بگیرم قاضی با شنیدن پاسخ و حوشمندانی تایگ به خودشوند کمی فکر کرد و بعد گفت تایگ حق با توه واقعا حق با توه، بنابراین من بعد از تمام بررسیها و آزمونها و با توجه به همه قوانین انسانی عادلانه به این نتیجه رسیدم که زمین میبایست متعلق به تو باشه به بعد رو کرد به کنال و دونال گفت زمین متعلق به برادرتون تیه این رأی عادلانه منه لطفا زودتر از اینجا پرید که خیلی خواستانه افثانه ایرلندی کنال، دونال و تایگ رو براتون امشب نقل کردم برای افتس کتاب به های مردم ایرلند نوشته ای فلیپ اسمیت ترجمه ی حسنا شمبیاتی اگرچه افثانه ها از سرزمین های مختلف اومدن اما وطن خاصی ندارن و متعلق به همه مردم جهانن در هر افثانه حادثه و ماجرای مخصوص نقل میشه که بیانگر غم ها شادی ها و مبارزه همیشه که آدم هاست ها و اینه که افسانه‌ها ها همیشه مندگار و دیرپاه هستن هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سالح پور ستار سید فری نوربخش مور برش. اجرا مهران دوستی سدابردار اکبر نیکاین یه کننده زهرا بدالله زاده تا افسونی دیگر به